افسان به نام خدای یگانی مهربان، افسانه‌ها هنر مردمان هن و در بین مردم نفوذ و گسترش زیادی داشتن. مردم خودشون افسانهها رو پرداخته و بازگو کردن و گاهی حتی اونا رو تغییر داده و به باورها و سنتها و عقاید خودشون نزدیک کردن. سرزمین ما ایران با توجه به تنوع قومیت ها و پیشینه هزاران ساله فرهنگ و تمدن در زمینی فرهنگ آمیانه از بسیاری از ملل دیگه غنیتر و پرمایه تره. در برمی هزار افسانه امشب یک افسانه ایرانی براتون نقل میکنم که افثانی زیبا از مردمان خوب سرزمین بختیاریه. افثانی به نام نخودی به روایت بیبی بی, بی خیلون اسماعیلی از روستای راستاب استان چهارمهان وختیاری به نقل از کتاب نمونه از قصههای ایرانی گردابری افشین نادری روزی روزگاری در گذشته‌های خیلی دور در سرزمین زیبای بختیاری زن و مردی با هم زندگی میکردند که فرزندی نداشتند و از این بابت خیلی ناراحت و متأثر بودند مرد هر روز به گاوداری میرفت و زن هم توی خونه به کاراش می میرسید سالها گذشت و زن و مرد پیر شدند تا اینکه یه روزی پیرزن که حسابی حوصلش سر رفته بود بلند شد و یک کمی نخدا ور تا اونا رو بو بده و برشته کنه. زن همینطور که مشهول بودادن نخدا بود یکی از نخدا از داخل تابه به بیرون پرد شد. زن که مشغول کارش بود یه صدایی شنید. دایه دایه دایه من پسرتم زن نگاهی به اطراف انداخت کسی رو ندید زیر لب گفت بسم الله الرحمن الرحیم این چه صدایی بود زن دوباره مشغول بودادن دادن خدا شد صدا باز هم بلند شد دایه دایه من پسرتم زن این دفعه با جدیت به دورو برش نگاه کرد و چشمش به نخود افتاد با عصبانیت اونو برداشت و به گوشه پرتش کرد و گفت حالا دیگه یه تک نخود برا من پسر میشه و بعد کارش رو ادامه داد و بعد از اتمام کار به ساتش رو جمع کرد و رفت توی اتاق و مشهول استراحتش. که مرد به خونه برگشت با خستگی از زنش پرسید آخه زن چه خبر امروز چه کار کردی پیر زن جریان نخود رو برای شوهرش تعریف کرد بعد شروع کرد به خندیدن که میبینی <تصفيق> مرد این آخر عمری یه تک نخود میخواد پسر ما بشه اینه بخت و اقبال ما مرد با ناراحتی گفت آخه چی کارش داشتی اونو پرتش کردی زن؟ زن با ناراحتی گفت وا! این چه حرفیه مرد؟ یه تکن خود به چه درد ما میخوره؟ مرد به تندی گفت یالا برو اونو بردار بیار شاید روزی به دردمون بخوره پیر زن نگاهی سر تعجب به شوهرش انداخت و رفت توی حیاتو بعد از چند دقیقه جستجو بالاخره تکنو خود پیدا کرد و اونو آورد و داد دست شوهرش خودش هم رفت گوشهای نشست و مشغول دوخت دوخت شد فردای اون روز پیرمرد به گاوداری رفت و پیر زن و نخودی توی خونه تنها شدن نزدیکی های زور نخودی گفت دایه دایه قضا بده تا ببرم برو بابام پیرزن زن زد زده گفت تو ببری مگه میتونی؟ نخودی با حاض جوابی گفت ها که میتونم نونو بذار توی بخچه و ببند به کمرم کوزه آب رو هم بده دستم پیرزن زن هاج و واج مونده بود نخودی گفت چرا معطلی دایه بابام گرسنه است؟ باید زودتر ای غذا رو بهش برسونم پیرزن زن نون نونو به کمر نخودی بست و کوزه آبو داد به دستش و با تعجب نخودی رو بد کرد نخودی به مزرعه رسید تا رسید از دور فریاد زد های بابا خدا و یه بیا خستگی در کن پیر مرد خوشحال از ذوق پسرش کار راه رها کرد و اومد و مشغول قضا خوردن شد نخودی گفت بابا تو قضا تو بخور من میرم برات گافداری بکنم. میکنم پیرمرد نگاهی به قد و قواری نخوده انداخت و با ترجا گفت مگه تو میتونی؟ نخودی با حاضر جوایی گفت ها که میتونن و بلافاصله فاصله رفت و مشغول کار شد زمین و شخ میزد و زیر لب بر خودش آواز میخوند نخودی همینطور که مشغول کار بود یه دفعه یه شاخه خوش افتاد روی سرش و دیگه نتونست از زیر اون بیرون بیاد. پیرمرد تا و خورد به سراغ نخودی رفت اما هرچی این طرف و اون طرف نگاه کرد اونو ندید که ندید با خودش گفت خدایا این پسر کجا رفته نکنه نکنه کلاغی چیزی اونو خورده باشه و با چند ساعتی منتظر موند ولی باز از نخودی خبری نشد که نشد پیرمرد با ناراحتی و نگرانی به خونه رفت پیرمرد به خونه که رفت فورا جریان شدن نخودی رو برای زنش تعریف کرد پیرزن که ناراحتی شوهرش رو دید اون دلداری داد و گفت ناراحت نباش مرد چند روزی صبر میکنیم شاید رفته یه جایی بالاخره هرجا بره برمیگرده اون پسر زرنگی نگران نباش هفتهها گذشت اما از نخودی خبری نشد که نشد پیرمرد و پیر زن هم دیگه از اومدن نخودی نومی شده بودند تا اینکه روزی تعدادی بچه با یه الاق و خورجین برای جمع وری هیزم به اطراف مزرعه اومدن اونا همینطور که مشغول جمع کردن هیزم بودن به همون شاخه خشکی رسیدن که روی نخدی افتاده بود یکی از بچه ها خم شد و اونو برداشت تا توی خرجین مندازه اما چشمش به نخودی که افتاد از ترس چوب و خرجین رو انداخت و پا به فرار گذاشت نخودی چوب دستی پسر رو برداشت و در حالی که بچه ها رو دنبال میکرد فریاد زد دیگه حق ندارین پاتون رو توی مزرعه پدرم بذارین اگه این طرفا پیداتون شد وای به حالتون بعد از دور شدن بچه ها از مزرعه نخودی علاق رو با خورجین های پر از هیزم برداشت و به طرف خونه براه افتاد نخدی نزدیک خونه که رسید فریاد زد دایه دایه من اومدم پسرت اومد من اومدم پیرزن که در حال دوخت دوز بود با صدای نخودی وسایلش رو یک گوشه انداخت و با خوشحالی رفت دمه در دید بله نخودی با یه الاق و خرجین های پر دمه دره پیرزن نوخدی رو بلند کرد و بوسید و گفت دایه به قربون تا حالا کجا بودی؟ <تصفح> نخدی با جدیت جواب داد کار داشتم دایه مگه من مثل این پسرهای بیکار و تنبلم هزار تا کاروبار داشتم بعد اولاغ رو به داخل حیات هی حی کرد و گفت دایه زودتر هیزمها رو از توی خورجین در بیار باید این الاق رو برای صاحبش بفرستم پیرزن زن همیه هیزم رو توی طبیل خالی کرد و خورجین ها رو روی الاق انداخت و اون رو از حیات بیرون کرد و در رو بست نخودی به مادرش گفت دایه پدرم کجاست؟ مزرعه است؟ پیرزن در حالی که اشک میریخت گفت نخودی سرت سلامه پدرت مو نمیدونی چقدر منتظر اومدن تو همیشه میگفت کاش کاش کاش نخودی حرف پیرزن رو قطع کرد و پرسید مگه پدرم مریض بود پیرزن با ناراحتی گفت نه سالم سالم بود نخودی با تعجب پرسید خب پس چطوری مردایه؟ پیرزن گفت پادشاه پدرت به دستور پادشاه کشته شد ای با تعجب پرسید به دست پادشاه مگه پدرم چیکار کرده بود دایه؟ پیرزن گفت هیچ فقط سر مصلعه با سربازهای پادشاه حرفش شده بود و گفته بود شما هم مثل پادشاه به مردم زور نگید همین حرف به با پسر و بعد شروع کرد به گریه کردن نخودی پیرزن و دلداری داد و گفت دایه جان اصلا قصه نخور من همین فردا میرم و تقاس خون بابامو از پادشاه ستمگر میگیرم. پیرزن با نگرانی گفت نه نه نه نه نه خودی نه اونا به تو رم نمیکنند تازه تو نمیتونی از پس اون پادشاه و سربازش بر بیایی نخودی زد و گفت <تصفح> چه حرفی میزنی دایه هنوز منو نشناختی روزگار پادشاه رو سیاه میکنم. کنم حالا میبینی پیرزن هر چه سعی کرد نخودیو از این کار منصرف کنه فاید نداشت که من فردا صبح نخودی از پیر زن خداحافظی کرد و به طرف قصر پادشاه برافتاد رفت و رفت و رفت تا به یه روباه قهوهی رسید روباه با دیدن نخودی گفت نخده دری کجا میری؟ نخدی گفت میخوام برم تقاس خون بابام رو از پادشاه بگیرم روبا با خوشحالی گفت چه خوب منم میتونم باد بیام آخه خیلی دوست دارم پادشاه پادشاهو از نزدیک ببینم نخودی گفت خب بیا بریم چند لحظه بعد روباه نخودی به طرف قصر پادشاه پرافتادند کمی که رفتند روباه ایستاد و نفس عمیقی کشید و گفت آه ناخودی دیگه نمیتونم خسته شدم پام دیگه نای رفتن نداره نخودی نخودی فکری کرده گفت صبر کن سب کن الان یه وردی میخونم اون وقت تو رو توی شکمم جا میدم روباه با تعجب پرسید چه وردی چطوری منو داخل شکمت جا میدی نخودی؟, نخودی خندید و گفت <تصفيق> تو کارت نباشه به من میگن نخودی نه برگ گندر خلاصه نخودی وردی خوند و رو فرستاد داخل شکمش و بعد به راهش ادامه داد رفت و رفت و رفت تا این رسید به یه شیر شیر با دیدن نخودی ازش پرسید با این نچله نخودیام جریان و گفت و شیر هم از نخودی خواست تا اجازه بده اونم به قصر پادشاه بیاد نخودیم پذیرفت فرهاد و به افتاد چند ساعتی که نخودی و شیر راه رفتن شیر ایستاد و گفت من دیگه توانه راه رفتن ندارم خو خسته شدم چه میرسیم نخودی؟ نخودی پوس خندی زد و گفت حالا حالا مونده تو چه شیری هستی که نمیتونی تا قصر پادشاه راه بری اونم با این یال و و شروع کرد به خندیدن که <تصفيق> شیرم شیرای قدیم شیر با نارتی گفت این قد اصلا نخودیه من که شیر جمون نیستم سنی ازن گذاشته پام دیگه قدرت صاحبه رو نداره نمیتونم خیلی راه بران <تصفح> نخودی گفت باش باش باش باش من کمکت میکنم و بعد همون ورد رو خوند و شیر رو فرستاد داخل شکمش و براهش ادامه داد چند ساعتی که رفت رسید به یه رودخونه بزرگ نخودی نزدیک رودخونه که رسید همون ورد رو خوند و تمام آب رودخونه رفت داخل شکمش بعد هم براهش ادامه نوخودی رفت و رفت تا به قصر پادشاه رسید آروم و بی وارد قصر شد و روی سنگ بزرگ و بلندی ایستاد و گفت و... آی پادشاه پول خون پدرمو بده زود باش پادشاه که توی ایوون قصر در حال استراحت بود با شنیدن صدای نوخودی رو کرد به سروازاش و گفت زود بریم ببینیم کیه و چی کی میگه و بعد بلا فاصله گفت نه اونو یه راست بندازیم تو لونه مرگ خروسا که دیگه صداش قط بشه سربازا نخودی ها گرفتن و توی مردونی قصد انداختن نخودی تا پاش به مردونی رسید فورا وردی خوند و روباه از شکمش بیرون اومد و تمام مرگ خروسای پادشاه رو آش و لاش گرد. و بعد هم پا به فرار گذاشت و رفت فردا صبح که افراد پادشاه به مردونی اومدن که به مرغ و خروس ها آب و دونه بدن دیدن که ای داد و بیداد تمام مرغ و خروس پادشاه زخمی و خونالود روی زمین افتادن نخودی هم اونجا نیست فورا این رو به گوش پادشاه رسوندن در این موقع با صدای نخودی از روی همون سنگ بزرگ و بلند به گوش رسید که آهای پادشاه پول خون بابام رو بده پادشاه تا صدا رو شنید به افرادش گفت برین صدای این لعنتی رو تو گلو خفه کنین یکی از سربازا عدای احترام کرد و گفت قربان چجوری اون خیلی زرنگه پادشاه با ناراحتی گفت اون زرنگه شما بی ارزه زود برین اونو بندازین زیر سوم اسبها تا خوب له و لوردش کنن اسبا. سربازا به سراغ نخودی رفتن و اونو گرفتن و انداختن توی طویله غست نخودی به محض ورودش به طویله ورد خوند و شیر از داخل شکمش بیرون اومد و تعدادی از و خورد و بقیه رو هم تکه پاره کرد و فورا از اونجا دور شد نخودی هم دوباره خودشو به بیرون غست رسوند و رفت بالای همون سنگ بزرگ و بلند فریاد زد آهای پادشا پور خونه بابام رو بده پادشاه که فکر میکرد نخودی زیر سم اسبها لهو لورده شده با تعجب و عصبانیت فریاد زد مگه نگفتم این لعنتی و بندازین زیر سم اسبها ها یکی از سربازهی پادشاه جلو اومد و گفت قبلهی آلم به سلامت باد ما اینکارو کردیم ولی ولی ولی نمیدونیم این چه موجودیه دیشب اسبها رو یا خورده یا تکه پاره کرده اون کارای عجیب و میکنه قربان پادشاه که حسابی کلافه شده بود گفت پس برین اونو بندازین توی بزرگترین تنور قصر اینجوری میسوزه و خیالمون از بابت مزاحمتش راحت میشه خلاصه اینبار سربازای پادشاه نخودی رو گرفتن و انداختن توی بزرگترین تنور قصر نخودی بلافاصل وردی خوند و تمام آب رودخونه از داخل شکمش بیرون ریخت و آتیش تنور رو خاموش کرد تازه سیل جاری شد و تمام تنورهای دیگر رو با خودش برد فردا که شد افراد پادشاه خبر آوردن که قربان اون موجود عجیب تنور پر از آتیش رو خاموش که کرد هیچ سیل هم به راه انداخته و تمام تنورهای قصر رو سیل با خودش برده قربان. هنوز حرف افراد پادشاه تمام نشده بود که با صدای نخودی بلند شد آهای پادشا پون خون بابامو بده زود باش زود پادشاه که دید راه به جایی نداره ناچار گفت برین، برین اونو بندازین توی خزونه جواهرات اون بیشتر از یکی دوتا اشتفی که نمیتونه با خودش ببره افراد پادشاه نخودی رو توی خزونه قصر انداختند ن خودیم تا چشش به اشرفی ها و طلا و جواهرات افتاد فوراً وردی خوند و تمام اشرفی ها رو به جز یه دونه ریخت توی شکمش بعد یه دونه اشرفی برداشت و رفت پیش پادشاه و گفت پادشا این یه دونه اشرفی به جای خونه بابام پادشاه که حسابی به تنگ اومده بود گفت باشه باشه باشه, باشه برو برو و دیگه سر و کلت اینجا پیدا نشه. نخودی در حالی که به سادگی پادشاه میخندید از غص بیرون اومد و زیر لب گفت این سزای پادشاهیه که به مردم ظلم میکنه و بعد به طرف خونه براه افتاد. و اما بشنوید از قصر پادشاه فردای اون روز افراد پادشاه به خزونه رفتن و دیدن که اتی یه اشرفیم اونجا نیست همه جا پیچید که خزونه پادشاه رو دوز زده و سوارهای پادشاه در تعریب و پیدا کردن دزد این طرف و اون طرف میچرکیدن نخودی به خونی که رسید به مادرش گفت دایه پول خون بابام رو گرفتم یه سینی بزرگ بیار تا پولا رو بریزم توش یه مقداری از اون رو بده به در و همسایه بقیهشو هم بذار برا خودمون پیرزن فورا رفت و سینی بزرگی آورد و جلوی نخودی گذاشت نخودی وردی خوند و سینی رو از طلا و جواهرات و اشرفی هایی که توی شکمش جا داده بود پر کرد پیرزن و نخودی از اون به بعد زندگی خوب و خوشی گذراندند و به نیازمندان هم کمک می کنید افثانه زیبای نخدی رو از گنجینه ادبیات شفاهی مردمان سرزمین بختیاری براتون نخ گردم برگرفت از کتاب نمونههایی از قصه های ایرانی گردآوری افشین نادری افثانه ها راه دراز زمانه رو سینه به سینه پیمدن و از هر دوره یادی و نشانی برگرفتن گنجی از میراث زنده فرهنگی هزار افسان کار مشترکی است از نویسنده و سردبیر زینت سالکپور ویراستار سید فریدبرز نوربخش اجرا مهران دوستی صدابردار حامد ملا کریمی. تالیف کننده زهرا عبدالله زاده تا افسانه دیگر به